اصل هفتم راز شادی موفقیت کلید شادی نیست شادی است که کلید دستیابی به موفقیت است آلبرت شوایتزر چند سال بعد از انتشار نسخه اصلی کتاب برتری خفیف به کشف مهمی دست پیدا کردم که افکارم را متحول کرد و درکم از برتری خفیف را به سطح کاملا جدیدی برد تا آن زمان برتری خفیف را در مورد چهار حوزه بزرگ زندگی یعنی سلامتی، ثروت، پیشرفت شخصی و ارتباطات به کار می بردم. اما بعدا و در اوایل قرن 21 کم یادگیری یک علم جدید و مسفور کننده به نام روانشناسی مثبت را شروع کردم. یا به عبارت ساده‌تر علم شادی. دستیار دکتر مارتین سلیگمن، پدر علم روانشناسی مثبت، داستان جالبی را درباره تغییر گسترده‌ای که در طی 20 سال گذشته در علم روانشناسی رخ داده بود با من در میان گذاشت. او گفت: تفاوت بین روانشناسی مثبت و روانشناسی سنتی در این است که در روانشناسی سنتی آمبولانس در پایین پرتگاه است و در روانشناسی مثبت آمبولانس در بالای پرتگاه قرار دارد. چیزی که علم درباره شادی یاد گرفته است. ابتدا اجازه دهید نحوه به وجود آمدن این علم را برایتان تعریف کنم چرا که این موضوع خودش یک مثال عالی از برتری خفیف در عمل است. در صد سال گذشته مطالعات جدید روانشناسی اساساً بر مشکلات مردم متمرکز شده بود. اختلالات حیجانی، بیماری های روانی، آسیب های روحی، اختلالات عصبی، روانپریشی، وسواس فکری، جنون و غیره که اساساً درباره بررسی جنبه تاریک بشریت بود. و به طرز عجیبی به عادتها، رویه یا تأثیراتی که قرایز اصیلتر و سرشت بهتر ما را تقویت میکردند، توجه کمی شده بود. البته تا سالهای پایانی قرن بیستم. در اواخر دهه 1990، یک روانشناس اهل فیلادلفیا به نام مارتین سلیگمن فکری به ذهنش خطور کرد. چه میشود اگر شادی حقیقتاً چیزی بیشتر از نبود غم و اندوه باشد؟ چه میشد اگر ما نوعی از روانشناسی داشتیم که به جای تمرکز بر نکات منفی بر نکات مثبت تمرکز می کرد؟ این ایده را همچون سمنبل آبی در نظر بگیرید. سلیگمن این نظریه را با یکی از همکارانش در میان گذاشت و او نیز آن را با چند نفر دیگر مطرح کرد. این گروه کوچک سپس حدود 20 نفر از بهترین و باهوشترین پژوهشگران جوان کشور را برای پیوستن به جنبششان دعوت کردند. آنها برای پیگیری نظریشان جمع‌آوری بودجه تحقیقاتی را آغاز کردند. شش ماه بعد، سلیگمن این نظریه را در همایشی با حضور هزاران روانشناس از سراسر کشور مطرح کرد. تا اوایل قرن 21 میلیون ها دلار در انبوهی از پژوهش های جدید سرمایه گذاری شد انجمن ها و مجلاتی بین المللی راه اندازی شد و شاخه کاملا جدید از علم روانشناسی متولد شد در عواست همان دهه عموم مردم پی بردند که چه چیزی در حال وقوع است در جانویه 2005 مجله تایم عنوان اصلیش را به این موضوع اختصاص داد و بر روی جلدش نوشت علم شادی سال بعد، پروفسوری از دانشگاه هاروارد یک دوره آموزشی درباره روانشناسی مثبت ارائه داد و 855 دانشجو با شرکت در آن دوره آن را به بزرگترین کلاس هاروارد تبدیل کردند. مجلات هیجان زده شده بودند. سیستم مدارس، مداره 100 شرکت برتر فرچون و ارتش ایالات متحده همه به این موضوع شدند. دولت پیشنهادی را مطرح کرد تا در کنار تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی شادی ناخالص ملی نیز به مسابه معیاری برای سلامت کشور اندازه گیری شود. در سال 2010 زمانی که تونی حسیه، مدیرعامل زاپوس، خاطرات کسب و کارش را در کتابی به نام ارائه شادی منتشر کرد، این کتاب در فهرست پرفروشترین های نیویورک تایمز در مقام اول قرار گرفت و تا بیست هفته متوالی در صدر این فهرست باقی ماند. سنبول آبی سطح آبگیر را پوشانده بود. پیگیری های بعدی باعث درک کامل شادی شد. از جهتی این انقلاب شادی چیز کاملا جدیدی نبود. به تعبیری تمام این علم برگرفته از انقلاب دیگری بود که صدها سال قبل به وقوع پیوسته بود. در واقع توماس جفرسون و بنجامین فرانکلین هنگامی که در اعلامیه استقلال امریکا سه حق مسلم بشر را مشخص کرده بودند به آن اشاره کرده بودند. آنها نوشته بودند که هر یک از ما انسان به موجب زندگی بر روی این سیاره حق زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی یعنی همان شادی را دارد. حالا موضوع این است که شما در وضعیت امروزی این سه حق مسلم را چگونه تفسیر می کنید؟ زندگی به معنی سلامتی و تندرستی شماست، هر چه تندرستر باشید بهره بیشتری از زندگی خواهید برد. سلامتی بیشتر نه تنها امکان زندگی طولانی تری را به شما می دهد، بلکه این امکان را نیز به شما می دهد تا در همه آن روزها بهتر زندگی کنید. ناخوشی مانند است که جلوی آفتاب را می گیرد. اگر اجازه دهید وضعیت تندرستیتان بدتر شود، از زندگی بهره ای برید. در جهان امروز با فرض اینکه در کره شمالی یا مناطق دیگری که به لحاظ سیاسی تحت فشارند زندگی نمی‌کنید، آزادی به معنی آزادی در امور مالی است. اگر شما نتوانید پولتان را مدیریت کنید، آزادانه زندگی نمی‌کنید. سلامتی مالی برایتان آزادی به ارمغان می‌آورد. آزادی برای دنبال کردن علایق، رفتن به دنبال اهداف، پرورش مهارت‌ها و استعدادها و تحقق بخشیدن به آمال و آرزوهای زندگی. و جستجوی شادی چیست؟ این سوال بسیار مهم است. بنیانگزاران این پژوهش امریکایی میخواستند محیط و زمینه ای را فراهم کنند که افراد بتوانند به دنبال شادی یا هر چیزی که برایشان به معنای صلح و آرامش نسبی است، بروند. آنها تلاش نکردند که خود شادی را تضمین کنند، بلکه فقط مکانی را فراهم کردند که افراد بدون اینکه آزادیشان در معرض خطر قرار گیرد، برای تعقیب شادی مجال بیشتری داشته باشند. چیزی که انقلاب شادی سلیگمن انجام داد درک مراحل معینی نیست که برای جستجوی شادی لازم است آنچه روانشناسان مصبتگرا به آن پی بردند این است که شادی چیز بزرگی نیست که افراد در جستجویش باشند شادی چیزی نیست که در بیرون باشد و افراد مانند نوعی سفر اکتشافی روانی یا حیجانی این طرف و آن طرف بروند تا آن را به دست آورند شادی دقیقا جلو چشمان شماست شادی چیزی نیست که آن را جستجو کنید بلکه چیزی است که انجامش می دهید یا دقیقتر اینکه شادی کارهای بسیار زیادی است که انجامشان می دهید، کارهای کوچک بسیار زیاد، در حقیقت کارهای سااد ای که هر روز انجام می دهید یا در مواردی ممکن است کارهای سااد ای باشد که هر روز انجام نمی دهید. در 15 سال گذشته نتیجه پژوهش های علمی درباره شادی اینها بود است. شادی از ژنتیک فرصت یا خوششانسی، ناشی نمی شود. شادی بسیار کمتر از آنچه ما تصور می کنیم به شرایط بستگی دارد. شادی نتیجه یک رویداد یا دستاورد بزرگ و دور از دسترس نیست. شادی با انجام دادن کارهای ساده و آسانی به وجود می آید که هر روز انجامشان می دهیم. و ناخوشنودی با انجام ندادن آن کارهای ساده و آسان روزمره به وجود می آید. بنابراین باب جان خریدن خطر دلخور کردن افرادی که در مورد تاریخ بسیار حساس هستند، اجازه دهید آن سند مورد احترام را دستگاری کنیم و با اضافه کردن چند کلمه این بیانیه را به روز رسانی کنیم. اجازه دهید تعریفمان از موفقیت را اینگونه بیان کنیم. زندگی یا سلامتی، آزادی و استقلال مالی و درک شادی درک شادی با برنده شدن در یک مسابقه بخت آزمایی، خریدن یک امارت مجلل یا یک لامبورگینی، کوچ کردن به ریویرا در سواحل مدیترانه، تبدیل شدن به یک شخص پولدار و مشهور یا ازدواج با یک ستاره سینما محقق نمیشود. درک شادی نبا دستاورد‌های بزرگ حاصل میشود، نه با تمجیدهای دیگران، نه با داشتن مادر بزرگی جادوگر و نه با یک خوششانسی خارق‌العاده که زندگیتان را زیر و رو می کند. درک شادی با انجام دادن بعضی کارهای ساده و انجام دادن هر روزه آنها محقق می شود. <تصفيق> یادگیری دوباره از مادرم آیا آن روزی را به یاد نیاورید که گرم صحبت کردن با مادرم بودم و فهمیدم که او میلیونر است؟ در طی سالهای بعد بارها به آن موضوع فکر کردم و متوجه شدم زمانی که گرم آن گفتگو بودیم چیزی در آن گفتگو وجود داشت که ذهنم را درگیر خودش کرده بود چیزی بسیار فراتر از افشای او درباره پولش اینکه مادرم به معنای واقعی میلیونر بود چیزی نبود که مانند خوره به جانم افتاده باشد گرچه اگر صادق باشم آن حقیقت نیز همچون پتکی بر سرم فرود آمد اما موضوع چیز دیگری بود چیزی که چند سال بعد به ذهنم خطور کرد چیزی بسیار آشکار و ساده که پیش از این هرگز متوجه آن نشده بودم. او نه تنها پولدار دار که شادمان نیز بود؟ بعدها درباره آن عمیقان به فکر فرو رفتم دقیقا چرا اینطور بود؟ او این مقدار پول را پسنداز کرده بود و یقینا این موضوع به او احساس امنیت و آرامش میداد. اما با وجود این او هنوز هم سبک زندگی بسیار ساده ای داشت. هرجا که این پول را پس انداز کرده بود آثار آن در زندگی روزمررش کاملا نامشهود بود. علاوه بر این سالهای بسیار زیادی طول کشیده بود تا او بتواند این ثروت را جمع‌آوری کند. همانطور که به گذشته نگاه میکردم فهمیدم حتی زمانی که نوجوان بودم و پول بسیار کمی داشتیم او در آن زمانها نیز شاد و خوشحال بود. او همیشه شاد و خوشحال بوده است. چطور چنین چیزی ممکن است؟ مطمئنا زندگی او در آن روزها آسان نبود من بچه شر و شیطان بودم خواهر و برادرهایم نیز چنین بودند شوهرش قبل از پنجاه سالگی درگذشته بود وضعیتش مشخصاً گونه‌ای به نظر نمی که زامن خوشحالیش باشد با این حال او همیشه شاد و خوشحال بود سالها طول کشید تا من راز شادی مادرم را درک کردم این راز یکی از عناصر بسیار مهم در برتری خفیف است. زمانی که بزرگ می شدم هیچ وقت از او حرفی منفی درباره چیزی یا کسی نشنیدم مهم نبود که آزار چقدر بد باشد. او همیشه به نحوی چیزی مثبت را در آن موقعیت پیدا می کرد. مهم نبود که یک شخص چقدر نفرت انگیز یا آزاردهنده یا بدجنس باشد. او راهی پیدا می کرد تا اندک خوبی های او را ببیند. حالا میدانم که تمامی آن رفتارها همان رفتارهای روزانه است که محققان میگویند منجر به شادی و خوشبختی میشوند در حقیقت هنگامی که شروع به جمع و تطبیق تمام نکات مهم می‌کردم که از آن تحقیقات مربوط به شادی یاد گرفته بودم فهمیدم که مادرم در تمام طول زندگیم از آنها پیروی می‌کرده است او در صحبتهایش هرگز از عبارتهای منفی استفاده نمی‌کرد همیشه در هر چیزی خوبی‌هایش را پیدا می‌کرد عادت داشت که به طور منظم نعمتها و محبت‌هایش را به یاد آورد او برای مردم کارهای خوب و مهربانانه انجام می‌داد احتمالا در زندگیش هرگز عبارت تمرین چشمانداز مثبت را به زبان نیاورده بود اما آن را در هر لحظه زندگیش انجام می‌داد او نمونه کاملی از اصول شادی هر روزه است زمانی که اوضاع خیلی سخت میشد حتی زمانی که دستمان خالی بود که البته همیشه اینطور بود یا وقتی که مشکلاتی به وجود می آمد، مطمئن باشید همیشه اینطور بود او همیشه شاد و خوشحال به نظر می رسید چیزی که حالا به آن پی بردم این است که او فقط آنطور به نظر نمی رسید او واقعا همان طور بود و دلیلش این بود که بسیاری از آن کارهای ساده روزمره را انجام میداد که علم روانشناسی حالا ثابت کرده است که آنها شادی واقعی و پایدار را به وجود میآورند. سالها گذشت تا پی بردم که مادرم چه چیزی را به من یاد داده است این چیزی است که من از او یاد گرفتم موفقیت منجر به شادی نمی شود بلکه عکس آن صادق است ابتدا شادی می‌آید یکی از بنیادی ترین و جالب ترین کشفیات در تحقیقات مربوط به شادی این است که کارهایی که شما را شاد می کنند فقط شما را خوشحالتر نمی کنند بلکه باعث می شوند زندگیتان بهتر شود. دلیل ساده‌ای وجود دارد که چرا نام این فصل از کتاب راز شادی است و نه راضی به سوی شادی. متصمئناً رازهایی به سوی شادی وجود دارد، همان چیزهایی که به شادی می‌انجامند، اما های پانزده سال اخیر در زمینه روانشناسی مثبت نشان داد که آنها دیگر راز نیستند و هرگز راز نبودند. بیشتر آنها در واقع چیزهای عمومی و عرف هستند. ما نام این فصل از کتاب را راز شادی گذاشتیم، چرا که شادی خودش یک عنصر رامیز برای چیز دیگری است. برای چه چیزی؟ عملاً همه چیز. تحقیقات گستردهی انجام شده از سال 2000 تا کنون نشان داده است که افرادی که شادتر هستند همچنین سکته و حملات قلبی کمتری دارند. درد و التهاب کمتری را متحمل می می‌شوند. عملکرد ایمنی بهتر و مقاومت بیشتری در مقابل ویروسها دارند. شخصیت‌های انعطافپذیرتری دارند و با سختی‌ها و مصیبت‌ها بهتر کنار می‌آیند. عملکرد کاری بهتر و موفقیت شغلی بیشتری دارند. زندگی زناشویی رضایتمندتر و با دوامتری دارند. هیت‌های ارتباطات اجتماعی بزرگتر و فعالتری دارند. در کارهای اجتماعی بیشتر همکاری می کنند، نودوستترند و تأثیر مثبت خالص بیشتری در جامعه دارند، از نظر مالی موفق ترند، بیشتر عمر می کنند. یک موضوع واقعا مهم درباره شادی وجود دارد. اینطور نیست که افرادی که موفقیت بیشتر، پول بیشتر و زندگی زناشویی بهتری دارند، در نتیجه این چیزها شادتر باشند. پژوهش انجام شده در این باره کاملا شفاف و روشن است. شادی قبل از همه این نتایج اتفاق میافتد. همچنین یکی از یافته‌های اصلی جنبش شادی این است که وقتی نوبت به درک نحوه دستیابی به شادی می رسد، بسیاری از ما برعکس فکر می‌کنیم. ما گمان می کنیم، وقتی موفق شوم شاد و خوشحال خواهم شد یا وقتی که سالمتر و تنندستتر شوم وقتی در جایی که دوست دارم زندگی کنم وقتی در آمدم به اندازه‌ای شود که زندگیم را بدون استرس و فشار مدیریت کنم آنگاه شاد و خوشحال خواهم بود. اما شادی این گونه حاصل نمی شود، متاسفانه ما گمان می کنیم که شادی این گونه عمل می کند. اگر من این کار را انجام دهم و به مدت کافی آن را انجام دهم سپس خوشحال و شاد خواهم بود. منطقی به نظر می رسد اما این اتفاقی نیست که رخ می دهد در حقیقت پژوهش فوق نشان داد که شادی دقیقا برعکس عمل می کند وقتی شما کاری را انجام می دهید که سطح شادی روزمره تان را افزایش می دهد، سپس شما موفقتر خواهید شد سالمتر وتنندتر میشوید و, می و ارتباطاتتان بهتر خواهد شد هرچه چه سطح شادیتان را بالاتر ببرید احتمال دستیابی به خاسته ها و آرزوهایتان بیشتر خواهد شد شادی جایزه ی کارهای درست شما نیست. شادی نتیجه درست انجام دادن کارهای دیگر نیست بلکه کاری است که می توانید همکنون انجام دهید و منجر به انجام دادن درست کارهای دیگر می شود. چند روز پیش روی یک دیوار جمله زیبا دیدم که به نظرم به بهترین نحو این موضوع را توضیح داده بود. خوشحال باش و دلیل آن شادی پیدا می شود. واقعا این جمله را دوست دارم. شادی و خوشحالی در پایان کار حاصل نمی شود شادی ابتدا می آید. آلبرت شوایتسر آن را به زیبایی بیان می کند موفقیت کلید شادی نیست شادی است که کلید دستیابی به موفقیت است کلمات شما طول عمرتان را پیشگویی می کند 2013 در سومین کنگری جهانی روانشناسی مثبت شرکت کردم در آن کنگره دکتر سلیگمن شواهد و مدارک جالب و شگفتانگیزی را ارائه کرد که ارتباط مستقیم بین نگرش و سلامتی را نشان میداد. او به حاضرین تصویری را نشان داد که بنابر گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های امریکا مکان بروز بیماری تسلوب شراین را ایالت به ایالت در سراسر شمال شرقی ایالات متحده نشان میداد. سپس تصویر دوم را درست در کنار تصویر اول بر روی صفحه نمایش قرار داد. این تصویر نیز مکان بروز بیماری تسلب شراین را در همان مناطق نشان می داد. با این تفاوت که از تجزیه و تحلیل نوشته های مردم آن ایالت ها در توییتر پیشبینی شده بود. دو تصویر تقریبا یکسان بودند. حیرت آور بود. این پژوهش حدود چهل هزار کلمه را در بیش از هشتاد میلیون عبارت تویید شده تجزیه و تحلیل کرده بود وقتی که نتایج به دست آمده را ایالت به ایالت با تجزیه و تحلیل حملات قلبی در آن شهرستان ها مطابقت داده بودند دریافته بودند که همبستگی و ارتباط تقریبا دقیقی بین آنها وجود دارد چه نوع کلماتی بیماری را به این دقت پیشبینی کرده بود؟ عباراتی ناشی از خشم، دشمنی، پرخاشگری و همچنین بیتعهدی و فقدان حمایت اجتماعی. هایی که شامل کلماتی مانند عصبانی، تنها، آزاردهنده، بی‌حوصله، خسته و دریایی از کلماتی بودند که نمیتوان آنها را در اینجا تکرار کرد. سپس او نموداری را نشان داد که ارتباط بین نگرش مثبت و خطر حملات قلبی کمتر را نشان می‌داد. آن نمودار نیز به همان اندازه جالب توجه بود کلماتی که با بروز کمتر بیماری تسلب شراین ارتباط داشتند شامل اینها بودند صبح شگفتانگیز مفید صهیم کردن روبه جلو عالی جالب توجه گفتگو و از این دست. من افتخار این را داشتم که زمان زیادی را به صورت خصوصی با دکتر سلیگمن سپری کنم و ارتباطی دوستانه با او داشته باشم ما مرتبا درباره بهتر زیستن و های واقعی ایده های پیشرفت شخصی و روانشناسی مثبت صحبت می کنیم او مرد نازنین و بینظیری است پیشرفت شخصی و شادی چند سال قبل هنگامی که مطالعه مطالب مربوط به جنبش شادی را شروع کردم بسیار هیجان زده شدم و دیگران را نیز دعوت به مطالعهی آنها کردم. سپس متوجه شدم که اتفاق خاص و عجیبی رخ داد. آنها از این مطالب خیلی بیشتر از اطلاعاتی که درباره پیشرفت شخصی به دست آورده بودند هیجان زده شدند. این موضوع من را به فکر فرو برد. هنگامی که وقتتان را در دنیای پیشرفت شخصی سپری می کنید ممکن است خیلی آسان ناامید شوید چرا که مردم به راحتی به آن آموزه ها پشت می کنند یا اعتباری را که شایسته آن است برای آن قائل نیستند. آنها طوری میگویند اه باز هم پیشرفت شخصی که گویی یک موضوع واقعی و شایسته توجه جدی نیست؟ اما به چند دلیل این موضوع درباره شادی اتفاق نمیافتد اول اینکه روانشناسی مثبت پشتوانه اعتباری محکمی از تحقیقات و پژوهش‌های آکادمیک دارد اما جنبش پیشرفت شخصی را عمدتان تجربیات شخصی افراد و های معلمان بزرگی مانند ناپل اونهیل، نورمن وینسنت پیل دنیس ویتلی برایانت ریسی و جیمران به حرکت در است جنبش شادی پیدایش کاملا متفاوتی دارد و عمدتا با تحقیقات علمی به جلو سوق داده شده است هنگامی که به بار علمی اعتبار دانشگاهی و همه این تحقیقات کاملا مستند مجهز هستید، درهایی را برایتان میگشایند که هرگز نمیتوانستید از طریق پیشرفت شخصی از آنها عبور کنید. هرچند دلیل دومی نیز وجود دارد که ممکن است حتی از دلیل اول قانع کننده تر باشد. مردم واقعا خواهان شادی هستند. مردم خیلی بیشتر از آن مشتاق رشد و پیشرفتشان به سطح بالاتری باشند، اشتیاقی سوزان برای شاد بودن دارند. پیشرفت شخصی برای بسیاری از مردم شبیه کار کردن به نظر می رسد. چه کسی می خواهد از آنچه در حال حاضر کار می کند سخت کوشانتر و بیشتر کار کند؟ اما شادی مانند کار کردن به نظر نمی رسد، بلکه فقط به منزلی شادتر بودن است. طبق مشاهدات و تجربیات هم حد اکثر ده درصد از افراد واقعا پذیرای کار روی پیشرفت شخصیشان هستند. اما وقتی بعد شادی را به آن اضافه می کنید و به آنها نشان می دهید که در پانزده سال اخیر در تحقیقات و پژوهش‌های مربوط به شادی چه اتفاقهایی رخ داده است ناگهان آن ده درصد به حدود پنجاه درصد افزایش می آبد. اگر تعدادی از والدین عادی و دلسوز را انتخاب کنید و به آنها بگویید من میتوانم توانم کاری کنم که فرزندتان از نظر شخصی پیشرفت کند یا اینکه می توانم او را پولدار کنم، کدام یک را ترجیح میدهید؟ احتمالاً بسیاری از آنها خواهند گفت او را پولدار کنید. اما اگر بگویید من می توانم فرزندتان را پولدار یا شاد کنم، آنگاه از هر ده نفر نه نفر بدون درنگ شادی را انتخاب می کنند. کدام پدر و مادری است که نمیخواهد فرزندانش شاد باشند چه کسی است که نمیخواهد شاد باشد موضوع جالب و شگفت در اینجا وجود دارد با مقایسه شادی که تقریبا همه به دنبال آن هستند و پیشرفت شخصی که در بهترین حالت از هر ده نفر فقط یک نفر واقعا به آن منده است در واقع ما درباره یک موضوع یکسان صحبت می کنیم وقتی همه تحقیقات انجام شده درباره نحوه بالا بردن سطح شادی را بخوانید، شروع به درک این موضوع می‌کنید که این دانشمندان دقیقا همان نوع رفتارهایی را توصیه می‌کنند که تمامی مربیان پیشرفت شخصی است که از آنها طرفداری کردهاند و فقط با مفاهیم کمی متفاوت آنها را بیان کردند. روانشناسی مثبت همراهی بسیار عالی برای فلسفه مثبت یا همان برتری خفیف است.